رادیو تکمچی نویسنده علی رضا بازیگران عاطفه نوری جعلیه اینا که دارن اینا شهرشون منم تنها می استراحت می‌کنیم میرین حال. رحمان باقرییان ترکی زبان مادری منه. خب منم زبان مادری اینا رو مسخره کنم؟ محمود عزیزی بیگ خال شما طلاتون آماده بکنید مجلس. مینا جعفرزاده الگات حالال ان شاء الله سنین موسیقی رشید لاهیجی کارگردان یدالله سمدی تهیه کننده مجید مزفری را در آذربایجان. سلیم از مخابرات روسا با دخترش آلما که توی تهران در یک خونه دانشجوی قدیمی صحبت میکنه دو همخونه‌ی آلما مشغول مرتب کردن اتاق هستن. حداقل یه چند روزی ببینمت بعد برگرد تهران. نمیشه ده آقا جان, جان دست من, من که نیست دستور دانشگاهه راستی یه تا. کارم پیدا کردم چه کاری؟ مادر آلمان توی مخابرات پیش همسرشم پولم هم میدن؟ دانشگاه دا که پول نمیده اینجا که گفتم پول میدن تا کی باید بمونی؟ نمیدونم یه ماه دو, دو, دو, ما. دو تا آخر تابستون؟ رفت. پس من میام تهران اینو که میگه مادر آلما میخواد گوشی و به زور ازش بگیره که پدرش اجازه نمیده متصدی مخابرات میخنده آراز سلام میرسونه آراز که تا این لحظه لبه پنجره نشسته بود با شنیدن اسم خودش خوشحال به طرف پدر آلما میاد با من کار داره امو جان پدر آلما رو متصدی مخابرات هم به آراز میده که برو کنر بذار حرفشو بزنه و متصدی لب هم به لب ادامه صحبت های پدر و آلما رو گوش میکنه مادرت حالش خوبه بده ببینم گوشی رو مادر اینو میگه و گوشی رو از پدر میگیره به جای همه خودت حرف میزنی؟ پدر بلند میشه و مادر میشینه دختر، آلما، سلام مادر چطوری؟ دورت بگردم هل. دلم برات یه ذره شده بزن. یه خبر خوش بدم جان. همین روزا خاله بزن. میشی به جان عزیزت به خدا ایشالله عروسی خودت پدر میخنده و آراز دعا میکنه خودت میدن. چطوری آلما آلما, آلما. آلما؟ آلما تلفن رو قطع کرد اینم که قطع شد و گوشی تلفن روی میز میندازه. پدر و مادر در راه بازگشت از مخابرات توی کوچ روستا راه میرن و با همدیگه صحبت می من نگران آلما هستم. باید برم تهران ببینم چیکار میکنه؟ آلما دختر عاقلیه نگرانی نداره بگو میخوام برم تهران اگه تاسمال منه، کرامتشو هم میدونم حرف تو باشه، قال نباشه، به چشم معلومه که حرف منه، جانت سلامت پدر و مادر آلما روی بالکن خونه قدیمی خودشون نشستن و صحبت میکنن مادر لحاف و سوزندوزی میکنه و آراز هم پایین روی زمین نشسته، پشت تلویزیون رو باس کرده و مشغول تعمیر اونه. <تصفيق> به شایعات بیارزش مردم گوش نده. دختر منم هست. هر سال تابستون میومد، می امسال چرا نیومد؟ آراز با پارچه روی تلویزیون می و حواسش به حرفای امون زنموه. منم دلم براش تنگ شده. اما تهران رفتن تو یعنی چی؟ مجزولت پیغام فرستاده. برم یه مدت توی قهوه خونش کار کنم باشه منم میام آراز یهو براغ میشه و مادر ادامه میده حسنداز دارم احتیاجی به پول تو هم ندارم آراز اصلی شده نمیشه بیای دختر بزرگمون جیران چند روز دیگه فارغ میشه کی باید مواظب به اون و نبمون باشه مادر به ناچار باشه من میمونم به خاطر جیران جشن مبعث حضرت رسولو چیکار میکنی؟ آراز بازم حواسش به اونا میره راست میگی هر سال در جشن مبعث شرکت میکردم حالا امسالو خود حضرتشون ببخشن مادر سری تکون میده و مادر سری تکون میده و نفسی میکشه چی بگم والله خدا کنه پدر که زانو به بغل نشسته لبخندی میزنه خب حالا بگو از تهران برات چه توفهی بیارم؟ آراز از طریق نردمون لبخند زنان خودشو کنار نرده های بالکون میرسونه ببخشید اموجان جان منم میام تهران خرجم هم خودم میدم آراز زندگی نداری؟ نه چه کاری؟ 21 روزه که تلویزیون نداریم اونو درست کن اون که درست شده جزالید. تا از تمومه جزالید. فقط باید پیچاشو شده بندن نمیشه تو بیای زنمون تنهاست دخترمو چند روز دیگه فارغ میشه جزالید. رسولم 15 روز دیگه جزالید. سربازیش تموم میشه جزالید. برو جزالید. برو به کارت بره آخه اموجان جان اینا به من چه برو جزالید. کم حرف بزن جزالید. تلویزیون یه دیگه, دیگه آماده میشه اینو میگه و از نردبون پایین میره پدر نگاهش میکنه و مادر لبخند میزنه چرا دل جوونو میشکنی؟ میخواست بره دخترموشو ببینی غلط میکنه بعد از عقد شب. پدر آلما توی اتوبوس نشسته و به سمت تهران در حرکته تعداد زیادی از مسافرها خوابن اما پدر آلما نه آراز دراز کشیده سر روی بالش لولهی گذاشته و در فکر به موسیقی گوش میده آلما سینی در دست از پله های خونه گرون قیمت بالا میاد توی سینی یه لیوان آب هست و یه جبه قرص و آمپول آلما از راه رو میگذره و وارد اتاقی با لسترهای مجلل میشه دست درده کن. امروز خیلی بهترین باید براتون اسفندود کنم الحمدلله قدمت خوب بود آمپول هم همه رو بهتر از پرستار قبلیه دست زده. آلما رو میبینیم که میخواد آمپول بزنه مقداری از ماهی داخل سرنگ خارج میکنه و میزنه هنوزم پرستاری میخونی؟ نه دیگه خانم من کاردانیمو گرفتم الان دارم تراحی پارچه لباس میخونم چه جاله؟ پرستار اون رمند چرا؟ طراحی پارچه؟ از حس که تیکدوزی و سوزن مامانم مامانمو دوست داشتم. گاه کمکش هم میکردم این کارا اگه هم باشن دیگه ماشینی شده. روسته های کوچیک اصالتشون رو دارم. روسته شما چطور؟ دو روستا مردم به هم نزدیکم خانواده ها دور هم به داده میرسه. بچه بزرگ کردم هر کدومشون یه سر دونی چه فایده داره فقط تلفونی حالمو می‌پرسن پدرش اشنام که اصبا به همه چیز هر جهه می دوند فدای عشق به شد خانم شاید شما خسته این دیگه باید بخوابید پتو رو روی پیرزن کشیده کنار تخ روی سندلی می آلما لیوان آبی به دست خانم خونه میده که تا نصف آب داره خانم آب رو می‌خوره و قرص رو پاییم آلمان لیوان آب رو می گیره و سر جاش می روزه که همه صحبتی نداره سکی نمی صبح که میاد میره تو بسخونه حرفی هم برای گفتن نداره ببخش دختر خدا ببخشه شب بخیل آلمو از اتاق خارج میشه و چراقه خاموش میکنه و خانم شاهید میخواه روز شده اتوبوس زردی که پدر آلما توی اونه از پیچ جاده عبور میکنه نمایی از شهر تهران رو میبینیم که برج میلاد در وسط اون خود نمایی میکنه پدر رسیده تهران خیابونای شلوغ تهران موتور بوغهای اضافه و وصدا های دیگه پدر آلما بغچه در یک دست دربع در دست دیگر که آدرس هم به دست داره وارد کوچه ای شده داره به اطراف نگاه میکنه دنبال پلاک خونه میگرده، پیدا میکنه لابند یا میزنه عبرو و زمین گذاشته و آلما دست خانم شاهد گرفته و توی حیات خونش قدم میزنن اونا به طرف میز و صندلی حرکت ها من فکر کنم واسه امروز دیگه کافیه خسته آه. شده خسته شدم آده. ولی هزار ما خیلی خوبین میخوام یه برنامه بذارم بریم کوه. در روی پدر آلما باز میشه دختر جوانی در رو باز کرد سلام علیکم خونه آلما شریفی اینجا هست. بله شما من پدرش هستم سلام آقای شریفی بفرمایید تو بفرمایید تو خدا الله بفرما. آلما آلما نمیاد هنوز ولی دیگه کم کم پیداش میشه شما بفرمایید تو آخه دیشب سر کار بود میاد ولی بفرمایید نه دخترم مزاحم نمیشم صبر میکنم بیاد اینطوری که بعد آقای شریفی شما دمه در بفرمایید تا یه چای بخورید آلما هم میاد الما بیادت بی‌نشاوا نیستی ناراحت میشوا بفرمایید خیلی ممنون دکتره همین دور اطراف گشت می‌زنم تا بیاد بفرمایید شما پدر رفته خانم شاهده روی صندلی نشسته دفتر روی پاشه و آلما پایین پاش روی زمین دو زانو نشسته باشه هر طور راحتین خانم شاهده چیز دیگه ای نیاز نداری نه باشه چون سکینه خانم دیگه یواش یواش میاد اگه جسو بدین من برم دفرماییم خدا آلما صورت خانم شاهدو میبوسه و میگه آلما جم آلما میست جانم کنار تختی پاکت. حقوق ماهیانت ورش دار چه عجله یه خانم شایطالا کلی تا سربرش مونده بلاخره که باید بگیری حالا چند روز زودتر نازمت میشه ورش دار شما نکن خدا سلام آلما خوشحال وارد ساختمون میشه. پدر آلما در کنار دیوار چوبات مزده نشسته و با چاقوش پوست یک تیکه از شاخه درختو میکنه. وسایلش هم کنار دستشه. آلما وارد کوچه میشه. پدرشو ندیده. یهو متوجه پدرش میشه. آقا جون. آلما جان، گلدوم؟ آلما جان، اومدی؟ پدر لبخند زنان بلند میشه و به دخترش نگاه میکنه. علیک سلام دخترم دورت بگردم خواستم خوشحالت کنم خوشحال که شدم اما نزدیک بود سکته کنم آقا جون پس چرا اینجا؟ گفتم دخترا دوستات معذب نشد رفتم یه گشتی زدم و اومدم نشستم اینجا تا بیا قربون اون راهی که تو اومدی چیزی نیست یه چارک ماسته آلما در خونه رو باز میکنه بفرما تو پدر دبه و بغچه به دست وارد میشه آلما به پدرش کمک میکنه تا کتش رو در بیاره آلما کمی نگران همخونه یاشه پدر و آلما روی تخت توی حیات میشه خیلی خوش, خوش اومدی آقا جون روزگارت خوشدخترم چه خونه باسفایی آقا جون تلفونی نگفتی به این زودی میای؟ <تصفيق> یه دفعه پیش اومد با مادرت دلمون تنگ شد فکر کردیم نکنه مریضی یا اتفاق بدی افتاده گفتم که هم کار پیدا کردم هم تیمی تابستونی گرفتم پدر آلما میخنده حالا بگو ببینم چه کاری پیدا کردی؟ از یه پیرزن تنها پرستاری میکنم دو تا دختر همخونه خونه‌ی آلما با چای و میله بیرون میان. آلما سری فارسی صحبت میکنه. آنا چه تری راستی؟ جیم بچهش کی دنیم؟ من قتل ماششون فهمیدم. یه صدله. خوبه. خیلی خوش آمدی نگهشته. الها رزار ما. دستش شیری را دکمه. شمسه. دستش را شکننده. دخترها چای و میله رو روی یه تخت میذارن. سنم بیکن استو درس. سر وششون چیز دیگه اینه گرافیک. نقاشی میخونه نقاشی آلما اشاره میکنه به پدرش که جلوی دوستان فارسی صحبت کن نقاشی رو نمیخونن میکشن <تصفح> <تصفح> اول درستش رو بعد میکشن بابات خیلی بامزه هستن <تصفح> من باباش نیستم پدرش هستم باباش چند وقتی به رحمت خدا رفت بابا منظورشون پدر و خدا بیا اما منظور من از بابا شما بودی خب یکم ماستی دهات قردم پدر یه بخچه رو بر و برای تخت میزنه گره یه رو باز میکنه اینم گردون برگه کشمیش آقاवले اوقات فقیران است اینم می کوچیک توی اون بخچه که گرهش رو باز میکنه این شالم هم برات درست کرده رحمت افتدی آقا جون دست زنمو شکرت کاشنگم اینو دارم میاد روجین شالو از آلما میگیره و سرش میندازه نمیاد سمیه شالو از روجین میگیره و سرش میندازه سمیه میره روجین هم بدون ماشین مگه شما ها بیلید سردارین دیرتون میشه ها ما یه لبخند به پدرش تحویل میده پدر دودله که بگه یا نه که بناخره میگه برم ببینم بزنم قهوه بزنم خونه رو پیدا میکنم یه سری بهش من من بزنم ایشوار. با من که بجله یه این که دارم میرن شهرشون منم تنها یه استراحتی بکنین میرین حالا باید برم سولت کارم داره آخه چی کارتون داره شاید تو قهوه خونهش یه چند وقت کار کردم بریم تو قهوه خونه کار کنی؟ آقا جون یه حرفی میزنی نه، اصلا برای شما خوبیت نداره یه وقتی کسی میبینه یه چیزی آقا حالا معلوم نیست ببینیم چی میشه و رژین با چمدون و ساک سفر از ساختمون بیرون میاد. آلما بلند میشه پدرش هم همین طور. را افتادی؟ آخه. اول ماشین لباسات شوستم رو بنده. دست درم. یه سر لباسام هست تو کمد اگه خواستی بردارم. قربونت برم. روی صیتم گذاشتم روی تخت. خب می پوشیدی. شوخی کردم. بعد لباسای من هستا میتونید بیزنیان. قربونت دارم. آقای شریفی، ان دفعه بعد که اومدی یه آش دوغ کردی خوشمزه براتون درست کنم، حس کنید. این دفعه ده. که فرصت نشد. خب خیلی خوشحال شدیم. باید از... خربان دارم قربونه دارم موازم خدا حافظ خدا حافظ دست احفظه. شما دار نکنم ممنون دست شما دار دست شما دار نکنم اینشالا بعدم ببینیم اتون خدا حافظ خدا حافظ موازم پشنا سفر بی خطر پدر آلما به هر دو دختر کمی برگه و گردو میده حالا آلما با پدرش تنها شده آلما وسایل پدر رو بر می از لباسای دوستت میپو آ، شوخی میکنن یه اه... بیبرم اتاقامو نشونت بدن پیرمردی از در خونه برموم اومده از پله‌ها ها پایین میاد سلام آقای قربانی سابقون نمونن سلام علیکم. پیرمرد که کفشای بزرگی هم داره بدون توجه از کنار لباس های پهد شده روی برند عبور میکنه بیا. پدر آلما با تکان دادن سرش ابراز تأصف میکن الما در کنار دوستش از کنار درختان سرسبز رد میشن و به سمت دانشگاه میشن. خوش کردن این و کشیدن یه پیرزن مریض هم ستمی ها. چهجوری تعامل می‌کنه؟ تعاملش خود خیلی خانم ماهیه، خیلی مهربونه. بعد که من درسشو خوندم ها. حالا که موندی ترن لا به خاطر نمرشم هم که شده بیا تو حمارش ثبت نام کن. واسه همین امروز اومدم. استاد گفت چن تا زمینم چی میشه. بارک الله خانوم. خلاف، خلاف. اونا به دانشگاه هنر رسیدن هم هاشون دم دراست دانشجوها وارد ساختمان دانشگاهی کنند استاد اومده آمفی‌تئاتر ببینم جیران. اینو اگه پدر آلما که ظاهرا دنبالش اومده از پشت حصار مشبک رفتن آلما رو نظاره میکنه تا دانش... سر کلاس استاد دربارۀ حمایتش دانشویۀ فرهنگ عامه صحبت باشه مواردی هم شخصی یا دانش سنتی خب در واقع طرح اصلیتون رو جلسه آینده ببینم ولی اگر کسی ایده جدید زده می‌تونه نشون بده استاد من استاد به طرف دختری که دستشو بلند کرده بود میره من این طرح‌ها رو زدم حالا شما ببینید که الوان‌های لازم وجود داره یا نه مشابه این طرح من در هنرهای بومی شرق اروپا دیدم خانم فلاح، این طرح کجا بردی؟ <تصفيق> بله استاد پارس ها تو فرانسه نمونه های شبیه رو دیدم تاکید من بر بومی بودن و سنتی بودن تر البته تر شما جذاب هست ولی ایرونی نیست خب ببینیم بچه های شهرستانی چی کار کرد نگاهی به کل کلاس موندازه و پیش آلما میری خانم شریفی تر جدید زدید استاد فقط در حد خیلی با عجله بیدن آن ما از بین کاغذوی که جلوشه یکی رو بیرون میاره و به استاد میده خیلی نگران نظر استاد استاد نگاهی میکنه آه. و لبخندی میزنه. این همون چیزی که من دو مالش میگردم در جهت فکر ماست بچه نگاه کنی ساده است پیرمی دیوه ولی ایرانی شما ترکی هستی میگی بله؟ استاد چپ چپ نگاهی به دانشجو میاندازه که باعث میشه خنده‌شون رو قطع کنه. آلما ناراحت شده. بله استاد ما آذربایجانی هست. بله آذری هستید. ببینید خانم فلاح پیشنهاد می کنم با خانم شریفی روی یک طرح کار بکنید. کار مشترک بدون شک نتیجه ای خانم فلاح راضیه اما آلما و دوستش نه. استاد میره و آلما و دوستش کاغذاشون رو جمع بدون و کلاس تمام شده و دانشجو توی راه رو در حرکتن. آلما با دوستش صحبت می‌کنه. غذا سیب اونا خانم فلا هم به اونا میگه. سیب زمینی نداره. ولی من سیب زمینی دوست دارم. آلما خانم فلاح کاغذی به آلما چرا تو تلفن من هر چطور یه قرار می‌ذاریم برای اتون خونه موز خونه خیلی هم با صفاست ببین اگر سخت ادو میام دنبالت میام تو اینکه اصلا من میام خونه شما اوکی نه. نه ببخشید من ترجمه میدم تنها کار کنم خانم فلاح بهش برخ اوکی آلما لبخندی می زنه چی سارا منم ترجمه میدم با آلما تنها کار کنیم. خانم فلاح میره و آلما و سارا نفس راحتی میکشند. یک <تصفيق> فلاح توی آسانسور میره و آلما و سارا از پله ها میگن. هر وقت دختره مشکل پیدا رو که هی میزنی. کارش خوب بودن سخص. کارش خوب بود؟ منو بگو که به خاطر تو من اشتباه خیلی کارش خوبه سارا. من باید دارم سرکار آقا جلوی آسانسور میستن هم پایین آمده امیش. پدر آلما توی پیاده رو کاغذ به دست دنبال آدرسه نوجوانی نشسته و کفششو از ریگ خالی میکنه آقا پسر اینجا گهر کنه محصولات میشنست کنه همین آقا موجوون صفرخانه ای رو نشون میده درون صفرخانه تابلوهای روی دیوار چهار نفر کنار سماور نفتی قهوهچی چای میریزه دوتا مرد چپق میکشند مردی نشسته و نوجوانی به اونها نگاه میکنه تابلوی دیگه مرشد وسط قهوهخونه نقالی میکنه و مردها روی تخت نشستن و غلیام میکشند چای هم میخورن مرشد ماجره هماسی رو ظاهرا رو نقل میکنه شاگرد قهوهچی سینی در دست به طرف یکی از تختها میره پارش و لیوان میزنه ساعت پاندولی خودنمایی میکنه قهوه خونه خوب رو نقداره مصولت دوردن عجب گزه هم مکان زیبایی درست کردی آفرین آفرینشر سلامت باشی متعلق به دوستان عاشق صلی متعلق به مردم مال من نیست بریم بریم بشینیم حاج محمود خود شاهده آقا سلیم این بچه های من هنوز عرق تنشو خوش نشده تهرونی شدن اول به تورکی افزادانم پیله کردم بعدش به لباس بوشیدم بعدش هم به وانت که آقا این چیه کلاس نداره اینو بفروش یه ماشین کلردار کلاس بالا بخرد از این قرم به درمو درم شما خدا رو شک که دخترت دانشگاهیه در این حال کارم میکنه مشصولت جلوی سلیم و محمود میزده والا به کار کردنش راضی نیستم اگه وزم میرسید نمیذاشتم کار بکنه به خودش سختی بده دستم خالیه عزیز من پیغامنم واسه این بود که بیای اینجا مشغول بشی دست و والد باشه دیگه مجبور نشید توتت برای این او پرگه بکنی با بچه ها صحبت کردنم حال ما نمیده مشصولت نگاهی به محمود بنیزه محمود لبخند بنیزه بهش گفتم شاید برم تو گرفه خونه این کار بکنم اوقاتش خیلی ترخ شد عزیز من تو که نمیخوای چایی بدی کارت هنریه بهش گفتی نه چیزی نگفتم خب بگو بگو بهش هم برای تو درآمد داره هم قلب خونه ما رونق میگیره هم پاتوق میشه برای همسایه‌های اونم. چه مدرا. آلما توی خونه جلوی آینه کوچوله روی تاخچه ایستاده و شال خردلیش رو سر می‌کنه و اونم مرتب. آقا جون فقط بیرون اگه خواستین بریم کلید یادوتون نراین خونه ما گوشاش سنگینه میمونیم پشت در. توی اخچال هم همه چیز هست من شب نمیام گشته نمونی به خودت برس خب؟ خب کوله و کاغذ و تخت شاسیشو از اون میز بر میداره و میره حالا <سؤال> میبینیم که پدر که تا الان روی تخت دراز کشیده بود سری بلند میشه کتشو میپوشی و در پی آلما راه میافته پدر آروم در رو باز میکنه. نگاهی میندازه که کسی اونو نبینه آلما در انتهای است و داره به راهش ادامه میده درو میبنده و پشت سر آلما راه میفته پشت درختی پناه میگیره که نکنه یه موقع آلما سر برگردونه و اونو ببینه از پناهگاهش خارج میشه کمی جلوتر پشت یه تیر چراغ برق مخفی میشه آلما از پله های یک پله آبر بالا میره تون تون پدرش هم خودش رو به پایین پله های پل میرسونه و بالا میره طوری که آلما متوجه نشه از پله برقی خاموش آلما پایین میاد و بعد از لحظاتی پدر از طرف دیگه پایین میاد. آلما به مترو رسیده. از پله برقی مترو پایین میره. پدرش هم آروم از همون پله میخواد استفاده کنه اما چون پله در حرکت میترسه. مکس میکنه. به یکی دو نفر تعارف میکنه و بالاخره دل به دریا میزنه و میره. هر دو روی پله در حرکتن و آلما فکرش هم نمیکنه که پدرش دنبالش اومده باشه. آلما بلیت مترو رو در جای مخصوص خودش میذاره در ورودی باز میشه و از طرف دیگه ورودی بلیت رو بر میدار و رد میشه پدرش هم به همون محل میرسه با در بسته روبرو میشه بلیت هم که نداره اصلا بلد نیست که چی کار باید بکنه و آلما که در بین جمعیت گم میشه و تعقیب پدر ناموفق میمون آلما خونه خانم شاهیده از اتاق خانم شاهید بیرون میاد در فکر از بلای طبقه دو پایین میاد یه کتاب خونه بزرگ پر از کتاب توی خونه خانم شاهید خود نمایه میکنه آلما پشت میزی میشینه یه کاغذ بزرگ سفید روی اون پهنه میخواد طراحی کنه قلمی رو برمیداره کمی فکر میکنه چشمش به یه مجسمه میفته اسبی وحشی و جوانی سوار برگاه نه این نه یه مجسمه دیگه زنی که دامن بلند و پرچی پرچینی داره بیشباهت به چیزی که خودش کشیده بود نیست دست به بکار میشه تراحی رو آغاز میکنه خطوطی رو میکشه کمی مکس میکنه فکر میکنه. به گلهای قالی نظری میندازه در طرحش استفاده میکنه تر در حال تکمیل آنما با دوستش سارا روی نیمکرد در محبته دانشکان نشستن گردو میشکنن میخورن و صحبت میکنن مقداری کشمش هم در کنار گردو هست سارا یه گردو برمیداره به جز اینا انگور و بادوم هم داریم به اضافه چند ماه بیکاری تو سالو یه مشفکر کهنه و پوسیده همین چیز دیگه یه اون موقع که پرستاری می کلی پ حرف بود الانم حرفای دیگه اگه میتونستم دیگه برنم نمی گشتم خووادمم یا بردمم اینجا با برای چی اومده اومدهدی که نمیتونونه اومده ببینه من دست از خطا نکنم کار دارم درس میخونم درمد دارم اگه پولش نمیذاش من کار کنم چرا چراقدر فکر منفی می‌کنی. کی چند واقعا دلش بزد تنگ شده کی به خیلی خاال تو همه حرف میکشی؟ ببخشید این اسمشی بود گروگام؟ گیر دکن و یمیش یمیش؟ خیلی چسبید حالا بعد بیم از آقا جونت کلی تشکر کنم شما کوف بفرمایی من خودم تشکر میکنم سر کلاس استاد تره خانم فلاح رو نگاه میکنه تره لباس یک زن که باز هم خیلی ایرانی نیست شما قرار رو دو شریفی کار بکنید والا استاد ایشون حذر نشودن که با هم همکاری کنید. من هم طرح خودم بزنم استاد نگاهی به آلما میکنه خب یه فکری دارم شما طرح جدیدتون رو کار بکنید بعدن این رو میذاریم در کنار طرح سنتی تا مقایسه بشه استاد اگه اجازه الدین من خودم یه صحنه تلفیقی ابتکاری بزنم ابتکاری تلفیقی یعنی چطوری یعنی که آلمان و سارا خنده‌شون گرفته ابتکاری یعنی شما ترهتون آماده که... بکنید من دیگه باز هم آلما و سارا خنده ی ریز میکنند استاد به طرف آلما میره ترهای مختلف روی میز و رو نگاه میکنه یکی از کاغزا رو برمی داره آنم شریفی این ترها با این رنگ و بوی بومی و سنتی حیفه که با یه کار فرکلوریک همراه نباشی نظر خود چی؟ صفر خانی الله جا اینجا حسلم سر بود یکی دو روز دیگه بر بود کنار محمود که مشغول حساب کتاب با ماشین حسابه نشسته و صحبت میکنه بیکاری همینه آدم بلا تکریفه ای کاش سازتو با خودت میوردی میشدی سلیم صدای سازش رو تو دشتهای خودمون با آواز فرنده ها دوست نه اینجا امروز تو پیاده رو میدم یک جوان نیشسته داره بلینگ بلین میکنی یه آلمه هم خوبه میکنی گرفتی؟ مش دستی به موهاش میکشه نگاهی به نبازنده و خواننده توی قهوه خونه میدازه و میبینه که مردم چطور به وجد اومدن دست میزنن و اونها رو همراه میکنن پیرو چبر بچه زن و من <تصلاح> <تصلاح> مات دارم فکر میکنم راستش بعدم نمیاد اما به خاطر دخترم آلما شک دارم. نمیخوام برم آلما کت و شلوار از مغازه می‌خریه و خارج میشه. به طرف خونه راه می‌افته. سارا از راه میرسه. مبارک باشه. بسم الله. ج... گفتم مبارک باشه. تو اینجا چیکار میکنی؟ سارا نگاهی به دور برش میکنه. با منی؟ آلما چیزی نمیگه و سارا با لبخند شونه بالا میندازه. آلما و سارا به خونه رسیدن آلما پردهای پردهی رو کنار میزنه و کتشربارو آویزون میکنه کنارش یه لباس محلی آویزونه سارا ناراحت روی تخت میشه از پنجره پدر آلما رو میبینه اما نمیشناسه بلند میشه آلما هم به کنارش میاد همونقدر که تو خوردی تو دیوار ما بسیار خورسندیم من تقیب میکنی جوج هیچ آسکار نداره همینجا میشنم طبیعا شما اختیاری ولی من باید برم کار دارم تو که اینجا یه شامی چیزی دست و پاک کن گوشته نمونیم دیگه لباس محلی از کجا؟ آه اینه آه آینه پارسالا ورده بودم باسته کی از بچه ها بر تیزر میخواست مون دیگه چقدر قرشنگه خیلی خوش یه من ببینم چه شکلی نمشه نه کار بیکارم نه خوش دیگه عزیزم منم بیکارم بس تو نمایشو لباس خورش دیوار مشلیم از پل‌های حیات پایین اومده وارد خونه میشه سلام آقا ج... سلام آقا شریفی علیکم سلام من سارا هستم دوستامه و همکلاسی‌ش خوشبخت باشی دخترم آلما من بیر آلما من خودش... میرم بیرون یه گشتی بزنم به طرف کوچه‌لوار میره و با کاور اونو نشونه پدرش می‌ونوال شما بپوش ببینم تن تو خوبه؟ چه موقع کد شلوار خریدم بود؟ پولشه کجا آوردی؟ حقوق گرفتم بپوشین کااب صتون ببینم دستت درد نکنه. اما حقوقتون میدادی به خرج من خارج دیگه. آقا جو زیاد نکنین دیگهتون اتاق بپوشین تو تنتون ببینم تو خدا؟ باشه پدر کت و شلوار توصی رو پوشیده و با لبخند جلوی آلما و سارا ایستاده. الله من قربونت برم این ماه شدی. مبارکتون باشه. مبارکت باشه. سلامت باشه ان شاء الله عروسیت. یشاسی نا قشریفی. سنده یشاسی. یا آبسی یادام داش میرم. خیلی دوست داشتم که با بحث خسوقاتی خیلی خوشحال اگه بخوام بدن تشکر کنم آخ جون من دیرم میشگه اجازه بدین بدم. تشکر کنم از شما تون خیلی. نا آگه آفل نوش جان آلما منم میبری میخوام اونجایی که کار میکنه رو ببینم محلارم ببینم نمیام تو میبری باش پس فقط زود حاضرش که بریم دیگه من حاضرم پدر خوشحال لبخند میزنه آلما و پدرش سوار مترو شده، قطار حرکت میکنه و وارد تونل میشه مردم توی مترو نشستن ادهیم ایستدن مش سلیم دائما کنجکا و ناوارد به دوروبرش نگاه میکنه خیلی متعجبه پسری پشت سر آلما ایستاده که به اون نگاه میکنه آلما هم با قیز نگاهش میکنه مش سلیم که متوجه شده باشون زرمی به پسرک میزنه پسرم کمی فاصله میگیره این قطار دلوقتي. کجا دلوقتي. میری؟ میردامات کجاست مردمات دو دو. و منظورم اینه که به شهرهای دیگه میره شهر مثلا گدی. تا تبریز مره. مثلاً... مره. نه نه حالا میره چی میگی؟ میگم شهرهای دیگه میره یا نه یکی دو نفر میخندن و آلمان ناراحت حالا پدر و آلما در کوچه هستن که خونه شیک و بزرگ بیده میشه. آقا جیوان من هزار بار بهتون میگم اینجا فارسی حرف بزنین مردم منتظرن یا آتو بگیرن دستت بیندازن چرا فارسی حرف نمیزنی آقا گز درسته باشی چشم فارسی حرف نمیزنم که زبان مادری منه خوب منم زبان مادری اینا رو مسخره کنم ها؟ نه, نه نه زود بیاین به اوتوبوس برسیم دیره خون آلما خونه دیگری میشونده جایی که من کار می‌کنم اینجاست. بد در خودشون مرتب میکنه به در خونه رسید. محله قشنگیه اما خیلی جوره. چاره چیه؟ خانمی با چادر مشکی از زیر آلاچیق بین باغ رد شده به اونها می‌رسه. آشپز خونه اتاق خانمو گردگیری کردن. شامشون هم آماده است. شما امری نداری؟ ما دیگه به سلام. خدا شما. خدا حفظ زن می تو مزاحم نه دیگه مزاحم نمیشم راستش تا اینجا اومدم که مطمئن بشم جایی که دخترم میره امنه, امنه یا نه. یه وقت از من دخور نشی. تو از طلا هم پاکتری خوب دیگه برم میتونی برگردی آره نگران نباش. تو برو منم میرم خودم با خودت باش آلما وارد خونه خانم شاهد میشه و پدر شادمان به دخترش نگاه میکنه آلما با باقمان منظره سلام علیک میکنه کلاس استاد اتاق نیمه تاریکه تصویره پارچه روی وایت برده آلما گاهی چورت میزنه و سورا و اونو نه. میپرونه اگر یه خوده دقت بکنیم یک پوششی که مالی یک منطقه است عملا دارای چندین نشانه است که اگر اون نشانه ها رو یه خود بهش فکر بکنیم متوجه میشیم که این پوشش متعلق به یک منطقه است که کوهستانی است دشت سبز، سرستیر ارزن بود شما که است پوشش ها معمولا مزعف بر این نشانه های دیرینه یک قومی رو هم نشون میدن برای مثال چند از این لباس هایی که متعلق به اقوام مختلف کشورونه تماشا بکنید. زنی با لباس سفید کوتاه، روسری سفید، شلوار مشکی. این یه پوشش زنانه مازندران. زنی با لباس بلند چین دار. این پوشش زنانه قشقایی است. این گوتانی. زنی که چیزی شبیه چادر مشکی برسر کرده. بختیاری. زنی با لباس بلند رنگی. این هم در واقع یک است که میتونه مثلا مال بخش‌های به صلاح مرکزی ما باشه تقریبا میشه گفت پوشش زمستانی قوم بختیاری زنی با لباس بلند قرمز و عصای درده است استاد چراغار رو روشن میکنه و بلند میشه خب معبد بکنید بگید از کدوم شهرستان هستید شما؟ تهران خراسان شیراز بده اشغیر قیور لورسونه با اون دمامان خودم تهران یزدی هم شهر روی تهران منانه کرمانشانه اسفحان تهران خانم چهر رو میدونم آلما میخواست بگه از شما خواهش میکنم برای خودتون یه زوج انتخاب همه میخندن و پچ پچ میکنن اصلا رو منظورم زوج هنریه برای کار یه خود جمعه داشته بسند این جازه لسول کاریتونه که پوشش و لباسها رو فراهم بکنید آماده باشید برای پاسخوی به مدعوین در زم 5 نمره هم براتون در نظر گرفتم که به نسبت مسئولیتی که دارید توضیح خواهد شد و علاوه دانشگاه هم قراره که هدایایی برای شما در نظر بگیره فقط به جمعید که وقت زیادی نداری. استاد میره و دانشجو با هم حرف میزنن آلما و سارا توی فکرم سارا چیزی رو به آلما میگه و آلما مخالفت میکنه سارا بر پیشنهاد خودش تأکید میکنه اما آلما مصرن میگه نه مشتریم توی خونه است. کتشالبارشو در آورده و با چوب لباسی به جالباسی روی دیوار آویزون میکنه و با خودش حرف میزنه آخه عزیزمت کتشالبار میخواستم چه کنم کتشالبار نه خیلی برات فول میفرستم اون یه ذره حقوق هم که گرفتی خرج من زره کردی ذره حقوق دکه علبصان خاک من هجلت اکیل من باشم و تو سر خودش میزنه خیلی آراد چه کنم خریدی دیگه علبصان دارم ایشالا شب عروسیت بکشم ایشالا تویم دا گیم مشتریم از کتو شربا رو میگردونه به طرف ساکه سفرش میره اونو بر میداره میره و کنار تخت روی زمین میشینه زیپ ساکو باز میکنه و لباس محلیشو در میاره پیرهنی سفید بلند مشکی شال بوتجقه و کلاه مشکی پشمی یک بز چوبی شاخدار که با نوار و مهره و زنگوله تزیین این شده هم دست شد بز روی یک صفحه مربع چوبی قرار داره و با یک چوب از زیر کنترل میشه و بالا و پایین میره مشتریم خوب به این بز نگاه میکنه حسابی توی فکر بر شما مبارک باد این ای. سال و ماه و هفته و روزتون مبارک جناب جبرائیل نامه آوادی و به خدمت پیامبر تقدیم کردند جناب مش با لباس محلی توی قهوه خونه پیش مش و حاج محمود آواز می کنید اکرم دست بر دعا برداشتند و فرمودند این عید بر شما مبارک با و مش با چوبی که به بز وصله اونو روی صفحه چوبی بازی می و یه بود آیو زیلو سفت از دیمیز مبارن آی ماشالله آی ماشالله سؤال ساول سؤال بار نظر چی آج محمود؟ کار جدیدیه خوبه مم. خوبه ما تبلیغات شروع میکنیم برنامه جدید تکمگردانی همین جمعه جامعه توی خیابونهای تهران راه میره و تکم گردانی میکنه یعنی همون بوزه چوبی رو میگردونه و میخونه خیلی از مردم بی از کنارش رد میشن بعضی هم یه پولی به اون میدن. بز من آی بوزه من برلاده به گردن بز من اگر مواش سیخ شده از سرما سیخ سیخ شده صفحه مربعه زیر اونو میچرخونه و آویزهای اون منظره زیبایی ایجاد میکنه بعضی ایستادن به اون نگاه میکنه دختری جوان به اون پول میده مردی جوان هم پول میده ای ماشالله آیاشا سال زیزون بو تازه مبارک، ای آیاشا سال ای روز ای از مبارک آلما به سرعت داره میره سارا هم دنبالشه آلما میسته سارا هم واسه ببینم برای چه حالاج میکنی آقا ندارم ندارم من که لباس محلی تو دیدم دیده که. باشی من یه استاد نگو هر کسی ابتکاری داره قصه باشه 5 نمره داره ببینوا داشته باشه تو مش این قریصه مال میخوری من که خبر خوشنویسی کنم لباس واسه چی نگهش داشتی جلایا چنایی واسه تو <تصفيق> کنه بله و مشسلیم که همچنان در خیابان تکم گردانی میکنه و میگه مردی با دو تکه چوب به هم میکوبه و با مشعلین همراهی میکنه زمان زیادی گذشت پیاده رو خلوت شد اما مشعلین همچنان میخونه و ادیبی اعتماد از کنار رد میشه و تهران شلوغ و پررفت آمد سارا لباس محلی آلما رو پوشیده آلما آینه به دست ایستاده تا سارا خودش رو توی آینه ببینه و مرتب کنه آلما آینه رو پایین میاره. چقدر خوشگل شدی خیلی بهت میاد یه کلاس زبانم بریم شیع آزریه تماماییار مطمئنم که به تو بیشتر از من میاد دردم کلاس زبانم لازم نداریم منتظر جزء سرکار بودم به من بیشتر می چانس من دوخته شده منم همینو میگم به تن تو دوختن خودت میپوشی پنام رارم میگی آلما سارا فاصله میگیره <صحن> و آینه رو در گوشه میگه عزیزم شما بپوش پنام راشم بگیر خیرشو ببینید من سنم خوش خوشنویسی بگیرم برام کافیه بحث نکن با من میره عکساتو بندازیم شر تو بگم خوشش اومد 10 دقیقه 10 دقیقه چه عصبانی میشه حالا سارا با لباس محلی روی تخت نشسته خوشگله دیگه حالتی و آماده عکس گرفتن یه حالت دیگه اینکه همونه بیا دم خوز بیدم خوزیه مرسلیم با تکم از راه میرسه الان چیه؟ کوزه اول سلام آقای شریفی سلام سلام دخترام به به به چه لباس گشنگ محلی آزربایجانه چقدرم بهت میام نرسی <تصفيق> آجون تاکم ها از کجا آوردی والا آقا سولت دعوت کرده بود یه چند روزی به خاطر مبعث حضرت رسول برم تو قعب خونش تکم گردانه کنم خودم من دلم برای تکم تنگ شده بود خلاصه رفتم تو قعب خونه امتحانه تا کم چی کردم بعدش هم یه دو ساعت رفتم توی خیابون بین مردم تکم گردانی کردم اصیش سیاه تابیل هم نگرفتن آخه نمیدونن این چیه که چند نفری یه کم پول بهم به دادن نمیخواستم بگیرم من رفته بودم برای گردش آرما متحجب و ناراحت به پدرش نگاه میکنه چقدر خوشگله جمیده واسه همایشا سارا هره پین رو با پای خودش اومده اینجا سارا خواهش میکنم برو تو حاضرش من دار دیرم میشه خواهش میکنه سارا میره آلما خیلی عصبی. اما چیزی نمیگه آروم دور حیات دوری میزنه و جلوی پدر میه پدرم متوجه حال آلما شده از اینکه پدرش جلوی سارا این حرفا رو زده ناراحته مش هم سر به زیر انداخته آلما بغضش رو فروت باقی نمیشه چی بگم آقا جون من آقا جون من با این بدبختی صبح داشت یا دارم درس بخونم یا دارم کار میکنم که سرمو رو بالا بگیرم با این دور افتادی تو شب بسن... چه فکری کردی آقا جون یه دقیقه فکر آب روی من نبودی اومدی جلوی میگی که پول. فکر نمی کنی کار رو بدی کردی من به شما نگفتم در این تو قهوه خونه من نگفتم اینجای این کار نیست آقا جون نگفتم کار بدی کردم کار بدی کردی آلما با حرکات دست میخواد که پدرش دیگه چیزی نگه. پیاده می و توی خونه میره. مشسلیم خسته و ناراحت و پشیمون از کاری که کرده روی تخت توی حیات میشینه. تکم روی تخت میندازه. دستی بر چانه میزنه. نگاهی به تکم که وری روی تخت افتاده میندازه. سارا از خونه بیرون میاد. لباس محلی رو عوض کرده و لباسای خودش رو پوشیده. کوله بر پشت به مش سلیم نزدیک میشه. مش سلیم هم که متوجه اون شده خودش رو جمع وجود میکنه و صاف میشینه سارا نگاهی به مش سلیم میکنه مش سلیم متوجه نگاه شده اما نگاه نمیکنه سارا میاد و روی تخت کنار مش سلیم و نگاهی به تکم میکنه مجسریم با سر جوابه مثبت میده آلما هم لباس بیرون پوشیده از خونه بیرون میاد اما نزدیک نمیشه آقای شریفی من تا حالا از این اروسکا ندیده بودم اسمش چی بود؟ تکم باش چی کار میکنن؟ عید ناروز و عیده دیگه و روزهای مبارک ازش استفاده میشه یعنی چی تکم؟ باز نه آقا جون براتون غذا گذاشتم ساره پشت بریم دیره دستت درد نکن بفرمایید خیلی ممنون با اجازه ببریم پیشتون باشه بعدا به پس بده نه خیلی ممنون دیر شده آقا جون خداحافظ خداحافظ سارا خانم تعرف نکنین ببرین پیشتون باشه گفتین جون میده واسه کی؟ سارا هیچ کی ببر دخترم مقاسبش باش توریش نشه مطمئن باشین خیلی ممنون خواد فسنم خود. سارا تکم رو بر میداره و به طرف در خونه میداره بذارش تو کل پشتید آرما نگاهی به پدر میکنه و از حیات خارج میشه حالا پدر تنم است. نفس امید و ناراحت کلایشو از سر برد خونه خانم شاهید مدیر انجمن نیکوکاری اومده روی کاناپه در کنار خانم شاهید نشسته و با اون صحبت میکنه انجمن از شب اتحالا پنج کنوباده بی سرپرست و تخت پوشش قرار داده به بچه های کمبزد سه تا مدرسه تو اطراف تهران این کمک هزینه تحصیلی شد این کمک اخیر شما که صرف چهار جهیزی آبرومد شد. چه عالی <تصفيق> <تصفيق> خود دستانی شما انجام انجامای کم نکنه خیلی هم تویز خواهش میکنم ببخشید تو کلامتون من وسائلتون آماده کردم ولی تلفن دکتر هنوز اشکال خب اشکالی نداره مادر جان یه خودو بهش چین خستگی در کن تلفن دکتر آزاد میشه. من که به هر حال رو گرفتم چه اجازه بدن چه ندن اگه به دکتور بگی قرار برن زیرت امام رضا مطمئن باش که حتما اجازه میده. بالا من ناچارم با پزشکشون هماهنگ هنگ کنم آلما جان حاج خانم به گردن همه دوستانمونو احالی قدیم این محل حق دار این انجامن نیکوکاری رو از مادر مرحومشون خدا بیا مرز عرض بردن حاج آقا و بچه هاشونو تقریبا تمام افراد خونواده رو عذر کرده بله شلام و عفظ. خانم شاهید میخنده و آلماش شماره ماره میگیره شمارم کم کم از کنم هاچ خانم میخنده و متواضعانه سر به زیرون میدازه که پدر مادر در قیدی هستن ب... بله خدارشون پدرشون چند روزی اومدن تهران پیش آلماجون پدر و مادر برکات زندگی هستن حتی اگر تو بستر بیماری باشه چه پیش ما چه دور از ما باید قدرشونو بدونی ما که قدرشونو ندونستیم آلما به فکر فرو رفته و خانم شاهید لبخند به لب داره آلما نمیتونه حرف بزن شماره یک دکتر رو دوباره گیره. دکتر من شریفی هستم پرستار خانم شاهید خیلی ممنون ایشون خوبن بل. آقای دکتر قرض از مزاهمت این که برای خانم شاهید یه سفر زیارتی به مشهد پیش اومده با... بله با یه گروه از خانما میخوام برن من فکر میکنم خیلی برای روحیهشون خوبه پاچ خانم تعیید میکنه یه خانم پزشکم توی گروهشون هستم خانم شاهید قطر عشق از گوشه چشمش پاک میکنه بله چشم. چشم. تست رو میرسونم خیلی متشکرم خدا دکتر موافقت کرده و هر سه آلما بلند میشه عزیزم من خانومو میبرم خونه خودمون فردا صبح مینیبوس از جلوی در خونه ما مستقیم رو میبره فرودگاه خب پس من بقیه رو جمع کنم یه زحمتی هم میفته گردن شما من قرصا با دستور مصرف هفتگی میذارم دیگه زحمتشو بکش پدرش خانم با حرکت سر قبول میکنه شب شده آلما هندونه به بغل از در حیات وارد میشه آقا جون آجون. هندونه خریدم قرمز قرمزه, قرمزه. قرمزه هندونه رو توی حوض آب میندازه و آده. به طرف خونه میره کارپوز آلما جوابی نمیاد چرا اتاقم خاموشه وارد خونه میشه چراغ روشن میکنه نگاهی به اطراف میکنه و شلوار روی جارختیه و وسایل پدر نیست مقداری پول هم روی قرآن برای آلما گذاشته لباس های سنتی پدر هم روی میزه آلما باز نگاهی به و شلواری که برای پدرش خریده بود میکنه ناراحته پدر کلید در خونه رو هم گذاشته و رفته آلما نفس عمیقی میکشه و خیلی نگران شده روستا آراز مشغول تعمیر وسیله ایه. مسئول مخابرات در اتاقش اومده و درو در میزنه. الله. آراز. آراز. پاشو به دختر بزن. عمود زنگ بزن. بزن او یا عمود تو تهران گوام شده. شماره داده زنگ بزنی. دا، دایان دایان. صف بزن. اومدم. <تصف> آلما توی خونه در کنار لباسای سنتی پدر منتظر تلفنه. سلام ام گوزی. سلام سلام، چه خبر؟ فارسی دارمش ترکی دانش با؟ اصلا حسل ندارم به خود فارسی بگو ببینم چی شو حسل بله با باشه حالت خوبی؟ تاری چه نیست؟ من نه آقا جون نیمده خونه میادش هنوز زودی نیجران نباش خودت خوبی؟ تو الان باید میومد نیومده حتما زای رفته رفته سینما گروه میره گفه نگران نباش ایدش میشه خوب تعریف کن ببینم چه خبر کارا میکنی تماس گرفتم ببینم با شما یا با مادرم تماس نگرفته نه تماس نگرفته منم بزنمی نگفتم من گم شدی تو هم اصلا خودت نگران نکو خیلی خب رسید اونجا به من زنگ بزنی نگرانشم باشه حتما منم نگرانتم ان درست میشه همه چیز درست میشه خب از درس مشکت بگو سختی آسونی یادت نرا منتظرم باشه باشه منم منتظر تو هم. آلما خدا. اه... آلما گوشی رو گذاشته آلما آلما صدای پا می شدنه لحظه ای به هوای پدرش بلند میشه. اما نه. انگار سابخونه شه ناامید میشینیم. شینه مشتریم توی قهره خونه پیش مشت نشسته و صحبت میکنم. تو رو خدا بزار برم حرام. کجا؟ مگه میذارم بری. امشب میریم خونه ما فردا هم خدا کریمه. صلت جا. آخرین اتوبوس میره و جا میمونرم. ازار برم. اینجوری معذبم نمیزاررم بری. اونم با این حال و ان اینشاهلله فردا صبح با اولین اتوبوس را میاد. بشی؟ بشی؟ نهشی؟ ماش میشه. عبازر، ایو. شام بده مشتلیم در فکر دستی بر صورت میکشه آی اولاد، آی اولاد اینم از آخرش سلیم چیزی نمیده فقط کمی تکون میده و یاد لحظی میفته که توی تهران اولین بار دخترش با روی گشاده بهش سلام کرده بود بعد در آوردن کتش توی حیات خونه خرید و شلوار. گرفتنش. شالی که سوقاتی برای آلما آورده بود و در کنار هم خونه یاش بهش داده بود روزی که دم در خونه خانم شاهید با هم خداحافظی کرده بودن مش سلیم نمیتونه قضاشو بخوره با وجود دوغ محلی توی پارچ باز هم نمیتونه بازم یادش میاد لحظه ای رو که آلما به خاطر تکم گردانی توی خیابون سرزنشش کرده بود مش سلیم به سختی آب دهانشو فرو میده نراحته شبه مش سلیم ساک به دست از قهوه خونه بیرون میاد مش هم بیرون میاد سوار ماشین مش سولت میشن تا به سمت ترمینار پنج پنشیش دانشجو در فضای باز روی پله ها دور تا دور استاد نشستن و استاد با اونها حرف میزنن یکی دو نفر لباس محلی پوشیدن تمام درگاش هایی سونتی ما کار بردیشتن تینی که دیگیدی که همینجا بزنی میسن آدم ها راحتیش سر مجایه سر ارزان هم آلما نایدی بچه ها نه بگیرین رو رنگ کنین تمام بیان سارا قوتی رنگ و دستیه که از دختران میده و به دنبال آلما از بقیه دور میشه آلما آلما زیر درختی نشسته و خیلی نگرانو هستن برای چه اینجا نشسته چرا اینجوری روز؟ تلام خیلی شور میزنه سارا قرار شد وقتی رسید زنگ بزنه آخه آی کیو تو که اینجایی چجوری زنگ بزنه راست میگه آلمان تازه فهمید ببین اگه با اتوبوس هم رفته باشه بعد صبحشوت برگسته دیگه پس کجاست پیاده نرفته آلمان میخواد لحظه جواب بده اما تازه متوجه حرف سارا میشه نگاهی عصبی به اون میکنه بلند میشه و به سرعت میره سارا هم پشت سرش ببخشید آلما یه دقیقه بایست شوخی کردم میخواستم از این حال هوا دارد بیارم وای که چقدر لجبازیه آلما میخواد با کارت تلفن از تلفن عمومی زنگ بزنی. خب. سارا موبایل بس. خودشو به آلما میده دوستان به لحظات پایانی زحمات داریم داریم استاد وسط دایره ایستاده و دانشجو هم دور دایره سنگی تعدادی از اونا لباس های مح آلمان در بین درختان ایسته موبایل هسته جوابی نمیاد قطعه دانشجوها به حرف استار گوش میده یایتون باشه قبلا با صحبت کردم لباسهای محلی رو در واقع بگونه ای احساس بکنید رو تنتون نشستی که خودتون مثلا متعلق به اون منطقه هستید. اکثرا دیدید، صحبت کردیم، یک جوری بین مردم راه برید که ما فکر کنیم که واقعا شما مثلا مال بجنورد هستید، شما مال ایل بختیاری هستید، شما از آذربایجان دارین میاید. اینها رو در واقع سعی بکنید مال خودتون بکنید، نزدیک به خودتون بشه به این فلات بزرگ پر از اشکال نمایش سنتی است. یکی از هم روح آییمی اگر این گروه برسه این در واقع شکل اجای نمایشی رو بر ما خواهد داشت بسیار بسیار زیباست سارا تکم از توی کیفش در میاره چوبش رو توی صفحه ملبر فرو میکنه استاد ناگهان چشمش به تکم میافته کلاه از سر بر میداره و به سارا خیره میشه بچه همینجا با چید سارا تکم به هر در میاره استاد به طرف سارا میره کلاه سرش س سارا که استاد دیده از روی تخت بلند شده و به طرف استاد می تکمه؟ بده ببینم از کجا گردی؟ نمیتونیم بگی یعنی چی؟ یعنی نباید بگی نمیفهمم؟ خیلی قول دادم به علم شریفی اصلا معلومه چی داری میگی؟ استاد... ام... خودمون نمیدونیم چه خبره درست سبیه آخه میدونین از شب تا حالا آلما خیلی نگران پدرشه چون که رفته شهر بدونه خبر از آلما هم بر نگشه بعد آلما آسان ما خیلی نگران دل و پسی آخه آخی... تکم آل پدرشه خودش بهمون آمون داده چقدرم نگفتی؟ استاد تکمون میگیره تکم به بزنره قوی میگن که جلوی گله حرکت میکنه تکم یعنی من تکم گردان به کسی میگن که در واقع این وسیله رو به بازی میگیره این نمایش آینی در اقسا کشور ما اجرا میشه به خصوص در شمال شرقی و شمال غربی جایگاهی که بیشتر به او منسوبه آذربایجان به خصوص شهر اردبیل قدیما در کشور ایران زمان رو به دو بخش میکردند. یک بخش بخش زمستانی بود یک بخش بخش تابستانی که شب یلدا آغاز چیرگی روز بر تاریکی بود بعدها که در واقع فصل شکل میگیره تکم گردان در ماه اسفند برای نوید دادن نوع روز میامد و یک سینی بزرگی داشت که توش وسائلی میزاشت وسطش هم یک شم میزاشت و می آمد اشعاری رو می در رابطه با نوروز و مردم در روستاها شهرها به اونها هدایه می دادن. مزامین مختلفی رو تکنگردان ازش استفاده می کرد به تناسبه اعیاد مثلا یکی از اعیادی که مربوط به مثلا تولد بود یا تولد حضرت امیر بود شعری رو در اون مناسبت می یا مناسبت های دیگه ولی در کل اساس شاص کار تکم گردان نوید بخش روز های در واقع شادیآور نوع روز و کییدگی بر زمستان. متاسفانه ما اینجا یک تکم گردان حرفه ای نداریم که بتونه از این آین نمایشی یک قطعه ای رو برای ما اجرا بود. آلما با موبایل با مسئول مخابرات روستاشون صحبت میکنه آقا ح آقا جونم اگه با اتوبوس شب را افتاده باشه باید تا حالا رسیده باشه. چه میدونم والا بلکه هم با اتوبوس روز را افتاده اونم نمیدونم تو رو خدا منو بی خبر نذارید نگرانم آقا من چجوری خبر بدم آقا هیدر این شماره موبایل رو بنویس صبر کن خودکار پیدا کنم آقا هیدر مسئول مخابرات گوشی رو روی میز میذاره و لا بلای انبوه کاغذای روی میز دنبال خودکار میگرده آلما پشت خط نگران منتظره یکی از دانشجوها چای در دست در لباس سنتی از جلوی دو دانشجوی دیگه رد میشه دانشجوی چای به دست به طرف اونها میره و آلما آلما دوان دوان به سمت قهوه خونه امون از خیابونهای شلوغ رد میشه سوار تاکسی میشه باز هم میدوه و بالاخره میرسه نمیدونم نمیدونم چه بگم خب پس یعنی کجاست تو تهران جایی نداره بره خدا میدون اختیار دل شکسته که دست آدم نیست اختیار آدمی که دست دل شکسته هست میبره جا که بخواد همون من نمیخواستم دلشو بشکنم فقط میخواستم بهش بگم اینجا تهرانه تکون مخوری عداتو در میارن مسخرت میکنن چی اونجا هر جغرب داره اینجا چی بهش میگه گدا بهش نگاه میکنه تو تهران تو چند سال با چشم باز دور براتو نگاه نگردی واقعا این مردم اون هاجی فیروز یا اکاردونی نابینا یا عاشق به چشم گدا نگاه کنه. آلما در سکوت فقط گوش میکنه یه یعنی فرقی نیست یه گدا و هنرمن خب مثلا تو رشنه هنر میخونی آلما کمی به خودش اومدی سر میگردی چشمش به نقاشی دیواری و شعر روی اون میگفتی و با خودش میگی مبید... آندم شما تا بخش لامه یادونی کردم مرا چون منو اما سالت چی کار کنی کجور دنبالش بگردن آروم باشد اغدرم راستش این که بابا تیشب شما بود صبح با اولی دوبست رفت حریفش نشد مشصولت لبخن میزنه و کمی از نگرانی آلما کم شدیم آلما بلند میشه مشصولت هم بلند میشه سلیب گفتش که یه مراسم داری تکه و لباس هم گذاشته براتون آره؟ بعد سفارش کرد که اگه کمکی رازم داشتی من کمک می با چشمانی تر اموسولت رو ترک میکنی زنم آراز نگران سوار اتوبوس شدن و به طرف تهران در حرکت چه خاکی به سرم بریزم چه خاکی به سرم بریزم آراز پاکتی بزن کشمش بزن برداشته بزن و زنم زنمو بیا شو یه شو شو شو کشمش بخور چه حسله ای داری؟ دا چه خاکی به سرم شد؟ آخه آدم بیهوش حواسی هم نیست شهر چه تو شهر بزرگ چی شده؟ زنمو مسافرتو کفته اون نکن دیگه چی میگی تو؟ خاک بر سرم شد ده ده ده <Dios> اوه برای چی؟ اگه بچه هست؟ مرد به اون بزرگی؟ تو شهر کورا نیست که؟ رفته پیش آلما مردا میبینی برده. وقتی پیداش نکردی نمیدونم مرده یا زنده خدایا خودت کمک کن خدایا بدادم اون برس. شب شد، آلما ناراحت توی حیات خونه با لباس خونه لبه حوز نشسته و دست در آب میزنه و فکر میکنه اون به یک نقطه خیره شده که با عجله بلند میشه الو سلام دخترم آجان حالت خوبه؟ نیران نباش من رسیدم دهات گروانوان تو دخترم فارسه حرف بزن یه وقت دوستداد اونجا نباشن خجالت بکشی تو بیا همه دنیام که اینجا باشه اما تو توت حرف میزنی آوه جون گیر در من گردم نفهمیدم. کردم من فهمیدم هرگه من نفهمم باج کوچارو صدا که خاک پاتو سرم میچشم می کنم آقا جون آقا جون دست بسید نکر تو میکنه تو برگرد چشامه راه برگرد نه دیگه تک گری رو باید جوانها دنبال کنن آقا جوان دیگه نیست اینجا که این کار ولد باشه آراز آراز <تصفيق> هیچ که سلیم نمیشه آخر. روز بعد آلما چادر سفید به سر نون سنگک تازه خریده از در حیات وارد میشه شیر و پنیر هم خریده آی جماعت بیدارشین، خیلی کار دارین آلما به اتفاق مادرش و آراز روی تخت توی حیات خونه نشستن و صبحانه میخوره اگه میدونستم نون دهاتی آوردیم نون نمیخریدم فکر کن. وری دخترم تو نون داغی بخور. ما نون تهرانی نمی‌خوریم. موقع برگشتنم با خودمون میبریم. علی برگشتری 50ش هست تا باید بخریم. شما تک همچغیری بلد بودی ما نمی‌گفتین؟ درستش از بابای خدا بیامرز هم یاد گرفتم. اول فکر می‌کردم چه یه کار سختیه. کار پیرمرداست. ولی بعد فهمیدم که پیری مردم حال یه روز زبان بوده دیگه خیلی باهوشی هزار مشتر طایفه ما بیهوش نیست فارسی, فارسی و درست صحبت کرد بله بله بله بیهوش بیهوش اتاق عمله روز همانشه های مختلف از شهرهای مختلف جمعن و موسیقی های فلکرو خودشون رو رنزن استاد به دانشجوای لر لور سرکشی میکنه بچه های کرد اسفند دور میکنه سارا دوربین به دست گرفته و از آلما که روی زمین نشسته و دامن لباس محلیش مثل ترهش روی زمین چین داده شده صحبت میکنه استاد چفیه دانشجو رو درست میکنه میشه. حال مالما شعریفی میخواستم نظرتون رو در مورد این همایش و کلن سنت ها و آین های اقوام ایرانی بدونم خصوصا اینکه گمون میکنم، هنوز موافق نیست. نه مخالف نیستم اگه مخالف بودم نه این لباس تنم بود نه الان اینجا نشسته است بود بعد اصلا قضیه موافقت و مخالفت نیست ببین تو سراسر ایران یه سری مراسم و آین برگزار میشه اگرگه تو اوننا رو برداری ببرید توی یه شهر دیگه هر شهر دیب. مثل تهران اجراشون بکنی به خاطر اینکه آدما یک لباس خاص خاستنشونت میش خاصی دارند و آواز خاصی میخونن برای اون مردم جالبه می یا نگاه میکنن ولی فقط در همین حد یعنی عمقشو درک نمیکنن باید این صنت ها و آین ها با تاریخ چشم، جای جای کشور احیا بشن چون مجموعه این هاست که میشه فرهنگ هووبیت ما دو خوش خورما دست دانشجوه دانشجوی دیگه برقه بر صورت و سینی بر سر پیش اونا میاد و برغ رو بر تلفیقی افتکاری؟ لباس محلی پوشیده و اونجا هست بروه موسیقی آذربایجان از پله ها پایین میاد استاد هم ایستاده و نگاه میکنه سارا هنوز فین برداری میکنه آلما با اشاره از سارا میپرسه زب میشه و سارا با سر میگه آره آرازم آلما نمیدونه چی بگه سارا آرام و بی صدا میخنده آلما نگاهی به سارا میکنه سارا و خاموش میکنه و مانیتورشون میده تازه دم آقا بلال چای تازه دم بریا. خیاره تو راحت باشه کاری کن همه راضی باشن حسکر نقل ارومیه پروچه گشن. محلی به مردم تعارف کن خیلی معدبانه بله اما توی این همایشی قرفه داره گروه رقص چوب بازی میکنن و یه نفر با یک اسب چوبی در وسط حرکت میکنه و شمشیری به دست داره فرو دست گروه هم در حکم شمشیره که به شکل نمادین به هم می‌کوبند و با رقص پا حرکت می‌کنند بروه به پایان رسیده و آلما دوان دوان پیش امو سلط میاد و سارام پشت سرش امو سلط امو سلط. امو سلط صفا دادی باشی دخترم سلامت باشی و روی چای رو روی سما چای چای نغل و رومیه محلی همانی چه دنشوی فرهاند آراز تکم به دست لباس های سنتی مش سلیم و پوشیده و در کنار زنموش و سولت ایستاده آل ما هم در کنار مش سولت ایستاده رموز این عید بر شما مبارک سال و ماه و هفته و روز بر شما مبارک بوز من بازی ها داره زحمت میکشه. برر رو نیش میکنه. ثروت میاره و چوپانش رو داماد میکنه آلما که تو فكره نگاهی به جمعیت میکنه که عکس العملشونو مادر هم نگاهی به آلما میکنه اما همراهی میکنه بز من آی بز من بیا به باغ ما بیا و گله کوچک کوچکو به مغزار ببر تا یه میش پنج میش بشه و گله بشه و که میخنده و لذت میبره و آلما هنوز نگرانه بوزه من رفت سفر وقتی برگشت تماشایی بود که گفت انسان خوب خوب زندگی میکنه اما وای به انسان بد که بد میده تکم مرنده گلنده. یخشی آدم چوخ یشر وای پی سدی رولنده یخشی آدم چوخ یشر وای پی سدی رولنده بوز من خاک بر سر من می ریزه، اگر ما در زنش بمیره مادر آلما لبخند میزنه آلما به آراز خیره شده و گوی پدرشو براش تدارو میکنه مبارک آیوزیلوز هفتهزگوز مبارک سizin بتواند مبارک، ایوزیلوز هفت از گینز مبارک. سizin بتواند از سیون از گنووز مبارهسیزون از مبارک همه نیستن. و برای آراز و تکم گردانیش کف می‌زند آراز برای تشکر کلاه از سر برمی‌دارد و نگاهی به آلما می‌کنه آلما محو تکم شده شب شده مادر آلما روی تخت خوابیده رخت خواب آلما خالیه آلما وسط اتاق ایستاده و به لباسهای محلی و تکم نگاه می‌کنه آرام آرام به طرفشون میره به تکم نگاه میکنه میخواد دست دراز کنه و بگیرتش اما پشیمون میشه دست پس میکشه دنه و باز نگاهی به تکم میکنه و نگاهش روی تکم و لباسهای محلی پدرش باقی میمونه <تصفيق> Thank you. کاران همیشگی رادیو فیلم امیدوارم از شنیدن فیلم تکمچی لذت برده باشین مثل همیشه باید کاران این برنامه رو خدمتتون معرفی کنم صدا برداره همیشه همراه ما جناب آقای علی حاجی نوروزی تهیه کننده و سردبیر خوشزوق برنامه فرشاد آزرنیا و بنده هم که به عنوان نویسنده و گوینده در خدمتتون بودم بهرام سربری نژاد. تا رادیو خدا نگهدار.